سوالی که ایجاد می کند این باور یعنی باور به مصحف پیامبر یعنی اون جمعی قرآن که ما در اختیارمون هست این جمع رو نسبت بدیم به پیامبر و می که همش از آن خودش ترتیب هم حتی سآل این است که باور، مشهور اگر نگوییم اجماع تا همین سالهای اخیر میشود ادعا کنید که اجماع مورخان اونهایی که به این موضوع پرداختند مفسران و قرآن پژوهان این است که قرآن علیه علیه السلام یعنی مصحفی که مولا تغییر فرمودن بعد ترتیبش رو خودشون بر اساس نزول انجام دادن یعنی مصحف علی علیه السلام ال اول شما ف علی رسول الله خب این باور همتون که عرض میکنم همه دارن. شاید بهترین جایی که اقوال رو جمع کردم آه جمهر مرتزا در حقائقون هامه که با علمان حقائق این بود در باره و یکی از اون هایی که از اون ویژگی هایی که گفتن این است که این بر اساس نزول بوده ارز می شود که ما به نظر ما می رسد که این اعتقاد و این باور از یک تفسیر و تعمل نادرست روایات خود ما نشد گرفته اونها هم رد پایی نهاییش کتاب های فضائل قرآن هاست که قبلا گفتیم که اینا بیشتر حالت تاریخ قرانی داره مثل فضائل ابن زرعیس، ابو عبید و دیگران. روز روزم اشاره کردم که یکی از بزرگواران کلاس ما در یه باری که ما تاریخ قرآن درس میدادیم وقتی که به این مطلب رسیدیم و به پندار خود ما ثابت کردیم که ترتیب از آن خود پیامبر هست یه سرکار می میگفتن که خب این مطلب شما با سنجش بابرهای دیگر در بار قرآن نیکم مشکل دارد گفتم چجور؟ ببینید همه علما از اول تا امروز میگن که مصحف علی علیه السلام بر اساس نزول بوده خب حالا شما میخواید بگید که پیامبر قرآن رو هم جمع کرده هم ترتیب داده و فعل علی علیه السلام میشه در تضاد با فعل پیامبر و علی علیه السلام پاکترین مخلصترین و پیروترین نسبت به پیامبر یا باید از این اعتقاد که ترتیب زمان پیغمبر بوده دست دارید یا از این اعتقاد که مصحف علیه السلام بر اساس نزول بوده است که مثلا بگید نبوده است یا این که بگید هم مصحف بر اساس نزول بوده و هم ما یه توجیح اقلانی داریم برای اینکه چرا این کار کرده و یا نه اصلا میگیم به شما که ربطی داره یا میگیم آب چون شوکانی که بسیار هم عالم ملا و باسواد و اثرگذاری هست اون یک جا همین بحث رو مطرح کرده و میگوید که این که گفته می شود خداوند حکیمه، و حکیم باید سخنش ته داشته باشه با هم ارتباط داشته باشه نه داشته باشه چی گفتم چرپایی را ما هم ملتزیم می شویم که پیامبر و خداوند از سر حکمت فیام را انجام میدن و از این طرف هم معتقد میشیم. آیه ها پراکنده پراکنده هیچ مهم ربطی نداره. خب این هم جواب دادن دیگه همشׁشْت که من آمدم و روایات مربوط به جمع قرآن رو طبقه بندی کردم و خیلی دربارش فکر کردم بالاخره به این نتیجه رسیدم که این حرف پایه نداره و هاذا هو یعنی که الان دارم میگم نه که علی علیه السلام مصحفش بر اساس نبوده است. خلاص؟ یه مقدماتی داره این مقدمات رو اول میگم به شدت و حدت گوش بدید تا بعد علم شود که ببینیم اون استنتاجی که میخواییم بکنیم باید خوب گوش بدیم اولش همین است که الان اشاره کردیم خوب دقت کنیم علی علیه السلام فرمودن سلونی قبل انتفقدونی فوالله ما فی القرآن آیتون الا و اعلم و فی من نزلت و اینه نزلت فی سهل او جبل و ربی رب و هبلی قلبا عقولا و ناطقا ناتقا هان بپرسید قبل از آنی که من از, از میان شما بروم به من دسترسی پیدا نکنید همه قرآن رو من میدونم هر آیه کجا نازل شده برای کی نازل شده چرا نازل شده و الى آخر و خداوند به من قلبی خرف ورز و زبانی گویا اتا است و الله ما نزلت آیتون الا وقت علم تو فی من نزلد و این نزلد اینم این همونه و از می که سریحتر و روشنتر و دقیقتر اینه فما نزلت على رسول الله آیتون من القرآن الا عنی ها ببین این اطلاق داره یعنی حتی یک آیه هم استاصللا نشده هر آی ای که بر پی نازل می شد پیامبر او را مرا وادار به خوندنش می کرد قر یعنی بادار بخندن میشه میگن بخون بعد من میخندم پیامبر می کرد من می نوشتم و بعد می نوشتم محکم و متشابه بود تحویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و قاسط آمش رو به من یاد میداد و خداوند بر من قلبی چنان و لسانی چنان عنایت فرموده که من هرگز فراموش نکردم و یکی همون قصه ابن کواه که وقتی که امام علیه السلام اینجوری فرمودند پاشدن و گفتن یا امیر المؤمنین فما کانه ینزل علیه و انتقای بون انخو حتی یه شما وقتی آیه نازل می شود سو بودی. اونجا چکار می بعد علیه علیه السلام فرمود بعد از اون حادثه اولین باری که پیام مرا می می‌فرمودن یا علی بیا آیه آمده الله علیه بعد و کذا و کذا بعد و شما رفتی به شما را ندیدم آیه ناظر شده چنین چنان و الاخر خب ببینید فعلا همینقدر از این مجموعه روایت ها داشته باشید که یک علی علیه السلام آگاهترین به درون مایه های قرآنه و دو که شما بعد از حالا چمگر دارید کشف میکنید که مصحف امام علیه السلام بر اساس نزول نبود خوب حالا سآل اینه سآل این است که ما نصوصی داریم که این نصوص نشون میدهد که بر اساس نزول بوده و استنتاج شما استنتاج نادرستیه و بعضی از علما هم اتفاقا همینجور فهمیدن یعنی فهمیدن که براساس نزول بوده ارض می شود که حالا بعد هم مطنهای سنیش رو می هم مطنهای شیعه رو فقط یکی رو فعلا بخونیم ارض می که امام عليه السلام فرمودن که وقتی که حادثه نظام اونجور شکل گرفت اخرجه علی کلم الناس فراغ منه و کتبه فقال لهم هذا کتاب الله دقت کنید اینجاست هذا کتاب الله كما انزل على محمدن اما انزلت جمععته بين اللوحين قالوا زا هو ذا عندنا مصحف جامع في جلاله حاجه لنا وذا با روايه ديگر که میگوید که در اخبار ابي رافع هست که علی علیه السلام نشست از جایش تکان نخود جلس, علی، جلس علیون که ما امزل الله این تعبیرهای اینجوری باز علمشد که ما یه ربایت دیگه هم که این خیلی حساسه و ما از یه خیلی مخواهیم باید استفاده کنیم اینه ما من احد من الناس یقول انه جمع القرآن كله کما انزل الله الا کذاب و ما جمعه و حفظه کما انزل الله الا علی یبنه بیتاله با این روایت که از که فرمودن که حازا کتاب الله قد اللفته کما امرنی و اوسانی علی رسول الله و اوسانی رسول الله کما زل. پس ببینید ما یه تعبیرهایی داریم اینجوری این کتاب کتب و مصحفی که من دارم یعنی علی علی, علی, علی السلام بگن جمع کذا ها گفته این مصحفی است که من نشستم و این رو جمع جور کردم کما انزل الله و الان هم آوردم که به شما بدم اونم هم گفتن که ما نیازی نداریم بهش ما خود ما داریم این مصحبه دیگه بردار سرکتا ببریم این کل ماجر است در نیاز منابعه اهل سنت نسی که از معصوم باشد مطلقا وجود نداره یعنی هیچ راوی و هیچ محدسی و هیچ مفسری از پیامبر یک چین تعبیر را نقل نکرده پیغمبر فرموده باشد که مصحف یکی علی علیه السلام فرموده باشد که مصحف من بر اساس نزوله از صحابه هم اینجوری نداریم که یه صحابهی گفته باشد که مصحف علی علیه السلام بر اساس نزول بوده الاول و فل اول ما هم همین روایت هایی که داریم همین روایت هایی که الان دیدید داریم قدیمی ترین متنی که خوب گوش بود قدیمی ترین متنی که در منابع اهل سنت در اختیار ما وجود داره و درباره مصحف علی علیه السلام سخن گفته است اینه قال محمد ابن سیرین فزعموا انه كتبه على ترتيله قال ابن عون فسالته اكرامه انزالش ذلك هل كان على اساس النزول فلم يعرفه میگوید که ابن سیرین گفت این ابن سعد نقل در طبقات خودش که نبه تو ان به من خبر رسید که علی علیه السلام اب تاقا ان بیعت ابی بکر یعنی از بیعت کردن با ابو بکر سرزد فلقیه و ابو بکر ابو بکر ملاقاتش کرد گفت اکره که امارتی تو با امارت من و خلیفه شدن من مشکل داری علی علیه السلام گفت لا ولاكنني او بیمین ليت بيمين ارتلی ارتدى من قسم خوردم که ردا بر دوش نکنم مگر اینکه جمع کنم قران را این رو از ابن سیرین نقل نقل میکنه و بعد میگه ابن سیرین در ادامش گفت به کلمه ها دقت کنید ابن سیرین در ادامش گفت فزعمو انهو کتبهو علا ترتیبهی پنداشتند و می پندارند که اون کس یعنی علیه السلام این را به اصلاس ترتیب نوشته خب یه دقیقه بکنید که آقای ابن سیرین چه کسان این را مورد اشاره قرار بوده و میگه پنداشتند و اینجوری فکر میکردن و اینجوری خیال میکردن اینه که ما نداریم معلوم میشه که همون وقتم سوال بوده رضا یه کسی از اکرمه سوال کرده اینکه ابن سیرین میگه کتبهو علا ترتیلیهی این مرادش اساس نزوله چون بوده علا ترتیلی اکرمه گفت من نمیدونم این تا اینجا مال ابن سیرینه دقیق کنیم بعد میاد یک کمی جلوتر میرسید به فضای القرآن ابن زوریس از ابن سیرین نقل میکنه خب نقل ابن سیرین همین است که الان نقل کردیم دیگه که ابن سعد اینو نقل کرده حالا که میرسه به اینجا میگه من به اکرمه گفتم که که ما انزل الامل فالاول اکرما گفت نه گفتم که اینی که ابن سیرین میگوید مصحف علی چنین چنانه است اونها یمان میکنن که اول و فل اوله اول اون اول اول اول که نازل کرده بعد دومی را بسی بومی را بچار می را اکرام گفت نه یک چنین چیزی اصلا برای بشر امکان نداره خب این ببینید یک کمی جلوتره حالا میاد یک کمی این طرف تر در یکی از فضائل القرآن هایی دیگه وجود داره که قال ابن سیرین این دیگه مسئله راست شد قال ابن سیرین که مصحف علی علیه السلام چه بر اساس نزول ال اول و فل اول هست اگر ما دست پیدا می کردیم بهش لاسبنا لا یا لاسبنا علم کسی را به من گفتن که مصحفیس از علی ابن عمی طالب در مدینه که بر اساس نزول ترتیب یافته و ما رفتیم خیلی گشتیم پیدا نکردیم اگر پیدا میکردیم لعصب لا علما جمع و علم بسیار مهم می دست پیدا میکردیم این علم بسیار مهم معلومشه قیل از متن قرآنه اگه متر قرآن که خب همه جا در اختیار مردم هستنگه این که چیزی ندارد این تا اینجا منابع اهل سنت حالا منابع شیعه منابع شیعه یکیش اینه قدیمیترینش اینه که این دیگه حدیث نیست حالت خبره فی اخبار عبی رافق. که عبی رافق کاتبه علي علیه السلامه که این ابی قال فی مرضه الَّذی توفا ابو رافع میگه پدر من در مریضی که در اون مریضی وفادیاف قال لعلي یا علی هذا کتاب الله خذه و فجعله علیون فی صوب همه اینا را گذاشت در یک جامعه در یک چد و شبی مداد علی علیه السلام فمذا الان منزله علی علیه السلام اینا را برداشت رفت به خانش فلم ما گو بذر وقتی که پیامبر به ملکوت اعلا پرکشید جلس علیون فعلفه کدوم همونی را که تو بقچه برآن بود و پیغمبر داده بود به پدر عبو رافع و گفت که اینو بده به علی ابن ابی طالب انزل الله همون جور که خدا او را نازل کرده بود تألیف کرد و بهی عالما و بی این بر اساس اون نازل کردن فقط علی ابن عمی طالب عالم بود این قیدهایی هایی که داره دقت کنید و میگه فقط علی ابن عمی طالب خب از این جمعیت یک کمی جلوتر دیگه روایت داریم خب این خبر بود آلا و رافع که روایت به معنای نقل از معصوم نیست در یک کمی جلوتر از کتاب سلیم نقل شده است که اخرجهو علی یون ایلن ناس علی علیه السلام قرآن رو آوردن و جلو چشم مردم نگاشتن گذاشتن بعد به اونها گفتن هازا کتاب الله کما انزل, انزل على محمدین قد جمعته بین اللوحين قالوا هو وزا عندنا مصحف جامع في القرآن اینه ما داریم دیگه این که آوردی برای ما هم چکار کنیم برده برده. در نوایتی دیگه دارد که علی علیه السلام آورد قرآن اینجوری و گفت هازا کتاب الله قد علفته کما امرنی و اوسانی پیغمبر همون جوری که به من امر کرده که این رو درست کنم و وصیت کرده که درست کنم همینجور درست کردم کما اون بر اساسه همونی که نازر شده است خیلی خوب پس ما در اینجا سه تا اینجا که دو تا اش مشه روایت میشه رو شما رو داریم که تعبیر الا ما انزل الله داره یا کما انزل الله داره دو تا محنا برای ما انزل الله یا ما که ما انزم متصبره یعنی دو تا تعمیر رو می شود داشته باشه یکی این که ترتیب مزوریه بر اساس تاریخ مزور یکی بعد از دیگه ای همون تصمیر و تصور معروفه که بر اساس و خب، دیگران هم نوشتن و این تعدیل را به کار بردن مستندش هم که دیدید ما روایت نقل کردیم از امور مؤمنین عایشه که گفتن که هر آیه که نازل می شد بدون استثناء کفسیرش را هم جبرائیل بر پیغم من اکرم به وحی الهی نازل می کرد و دیدید که علی علیه السلام فرمودن که همه اون چرا که نازل می پیامبر به من وسیعت میکردن کردن املا می کردن و منم می بشتم. خب حالا اون طرف اهل سنت رو بگذارید بیایم به منطقه خودمو اولین کسی که این تعبیرهایی را که الان خوندیم برای شما کما انزل یا ارز می شود که کتاب الله کما انزل علی محمدین یا کما انزل الله اولین کسی که اینها را به الاول و اول بر اساس تاریخ نزول تفسیر کرده شیخ مفیده شیخ مفید رحمت الله علیه از این روایات فهمیده است که کما انزل کما انزل الله کما نزل یعنی اینکه این قرآن بر اساس نزول و یکی بعد از دیگری بوده قد قال جماعتون من اهل الامام علیه فلان که در اوائل المقالات شیخ رحمت الله علیه فرمودند بعدش دیگران پشت سر آن این مطالب رو گفتن و تا رسید از به آلمان متاخر دیگه این رو ریزش کردن و میبینید که مثلا آوای مرحوم شرف الدین میگه اول شیعن و ببینید از همین جهت هم که تفسیرها و تعمیلها و بیانها و اینا کنار مصحف بوده علمای ما غالبا مصحف را به عنوان تعلیف تلقی کرده یعنی نوشته علی علیه السلام که کنار قرآن رو می نوشته. ولی زای شرف الدین میگه اول این دوانه و امیر المهمنی کتاب الله عز وجل فا انهو بعد ای من تجیز نبی آمدن پرداختن به این جمعه مرتباً على حسب نزول بر اساس نزول منظم کردن یا اردوشن مرحوم آقای معرفت فرمودن که امتاز مصحفه اولا به ترتیبه الموضوع على ترتیب نزول الول و اول. آقای جعفر مرتزا نوشتن که این خصوصیتی دارد اولیش این است که مرتباً علی حساب نزول بقیه رو به اضافه اضافهی می کنند دیگه منسوخ بر ناسخ مقدمه و الی آخر محتوا را هم بر اساس روایاتی که ما داریم حالا این ساختارش بود بر اساس روایاتی که دارید به الان از علی علیه السلام شدیدید تمام حقایق نهفته در آیات رو پیغمبر اکرم از علی و شنیده و آن بزرگ بار هم نوشته هست ریزش ای بر بر در بعض از روایت هست که مثلا هیچ ازش از اصل قرآن بودن چیزی ازش کم نشده اسماع اهل حق و باطل در اونجا در اون تفسیرها و تعمیلهای پیغمان اکرم میگن بوده و بعضی از روایات ما داره که مثلا در لم یکون کفر کفرون زیل آیه چار میشه یا پنج هفتاد تا دو نفر از منافقان قهار اسمشون برده بوده یعنی yani پیغمبر اکرام اینا را اسم برده بوده که اینا جوز منافقین هستم و علی علیه السلام اینا رو نوشته بوده خب عرض می شود که حالا ما حرفمون این است که یه تصویره، یه تصویره این است که ما انزلال... الله یعنی مصحف علی علیه السلام در خواهی کرده. تازه خود او هم باز میگه کما زرم او اینجور که گمام میکنند نفر بعدی که نقل کرده با قاطعیت این رو کرده نزول ترتیبی الانول فلا من نفر سوم که نقل کرده که بازترش کرده گفته ناصف مقدم منسوق و مقدم بر ناصفه و الى آخر هیچ کس هم مطم رو ندیده که از نزدیک میگه من دیدم اینجوری اکی بود روایات هم همین هست که دیدید یعنی یه روایت دیگه هم هست که بیشتر روش تکه میکنم اونم باز خب خود مبینید بزمیشد که در روایاتی که ما الان نقل کردیم در خدمت شما تعبیرهای خیلی قابل توجهی داشت یک اینکه روایات گفتند که اگر کسی ادعا بکند که قرآن را علامانوزل جمع کرده غیر از علی ابن دروغه درسته؟ ما من احد من الناس یقولو انه جمع القرآن کله کما انزله الله الا کذاب و ما جمعه و ما حفظه کما انزله الله الا علی ابن عبی طالب یه جمله دیگه هم دارم اونو فیلن داشت باشید بعد میگم و داره. خب ببینید اگر ما نزوله الامل و فالامل باشه برای دیگر علی علیه السلامش این چیزی افراده شدن اون همه بودن یا مرای و منظرشون بود من حتی الان استعمال بکنیم که این که این آیه که نازل شده در کجا مرای گرفته این طرفش چی بوده؟ اون طرفش چی بوده این آر رو بشیدی نمیده دوستان یعنی اگر که مهمنی حساس بود که بر پایه نزول و تسلسل تاریخ و قرآن بدن میسه نمیتونیش چون هر روز حساس میشد پیغمبر اکرام وقتی که میگفت این بهش اگر این وقتی شکل کرد منو بپرش پیغمبر میگم که من خیال میکنم این آیا جلوتر نازه شده این جلوتر نازه شده این من گمام میکنم این سور جلوتر نازه شده که این یا یا این یعنی امکان تحقق برای این که به ترتیب نزول گذشته باشد برای همه امکان داره نه فقط برای علی علی السلام اونی که برای غیر علی امکان نداشم این بیانات که گفتیم نه غیر از علی علی السلام کسی داردنده که من همه آیات را برقای طورزی ها مترسل هیچ کسی دار در دست دیر از علیه همش کاری کرده علیه علیه السلام تنها کسی که دار میکند که هر آیهی که نازل شده بدون استثناء بر من نازل شده و دیگران هم در باره علیه علیه السلام را کرده بنابراین تنها کسی که میتواند بگوید کما اونزل به معنای تمام هم و مطالب علیه حالا شما ادامهش رو نگاه کنید میگه که ما من احد من الناس يقول انه جمع القرآن كله كما انزل الله الا كذاب و ما جمع و ما حفظه كما انزل الله الا علي بن ابي طالب ولا ائمه من بعده ولا ائمه من بعده که به ثبت و ضبط نزول تاریخ کار نداشته ائمه بن معدهم محتوا در دستشونه حقایت در دستشون هست معارف در دستشون هست بونجا رفتی ندارد که خب ببینید در روایت ابو رافع چی داشتید در روایت ابو رافع که اگر اصل روایت را بپذیرید در روایت ابو رافع ابو رافع میگه که پدرم همه این قرآن را که دماغوبه معلوم مکنی قرآن را همه اینها را برداشت داد به علی علیه السلام علی علیه السلام هم برد اینها را جمع کرد منظم کرد و کانه بهی عالما یعنی تنها کسی که میتوانست علما نزل ترتیب بدهد و دانشش را داد علی داش علی بر امام کسی دیگه اصلا این دانشی که قرآن را علما انزال الله کند بکنه نداشت یعنی واقعا چهار تا صحوی دو تا صحابی پ تا صحوی صابوی های خلص مختلف است پاک با سوات کم که نبه اون همترکار هم بکنن چرا؟ ببینید نزول نه بیانات نزول آیات یا دیگه آیا مثلا تا اینجا اینجاناظل شده آیه بعدی که می آمد، همه اینها می رفتن و گوش میدادن آیات را می فهمیدن نازل شده حتی آیات رو بر اساس نزول تعلیم می گرفتن ابن مسعود میگوید یعنی سولمی از ابن مسعود در که آیات وقتی که نازل می ما رفتیم به پیامبر می که به ما این آیات را بخوان تا ما یاد بگیریم و پیغمبر دهتا دهتا به ما می داد بیشتر نمیاد نوکه روزا نمیاد ده تا ده تا به ما یاد میاد پیش می رفتم ببینید این آیره رو هر نما شی به خونه شما منیشو کنم شما خونه شو توانستن بر او تنظیم میکنن تن روایت دیگهی که وجود داره و اون رو شاید بیشترین روایت یا مثلا این روایت ببینید میگوید که هاذا کتاب الله قد الفته کما امرنی و آسانی رسول الله کما انزل یعنی یک چیز اختصاصیه ببینید این مصحفه مصحفی که پیامبر به من امر میکرد و وصیت می کرد که کما اون زل سبت زبتش کنم و هم گفتن قبول نداریم بردا ببر اگر همین قرآنی که دست همه باشه بود که دیگه ترت کردنش نداشت که، اونها هم در سیاست اینقدر خین نبودن خیلی هم سیاست مدار بودن. نحوه برخوردشون و جامعه را به طرف خودشون کشمدن هم بودن. اینا خوب اگر قرآن وقتی که نگاه کردن مسادیک علی علیه السلام وقتی نگاه کردن احساس میکردن که همون همونیست که خونشون دارن. سیاست اقتضا میکرد که علو علوش کنند. بگن که بارک الله داماده پیغمبر آلمه به اسرار قرآن شما نطف کردید؟ این رو اصلا بعد از این قرآن رو به نام شما چاپ میکنید پخش بشه مسلم و این که قبول نکردن بر اساس اون که شهرستانی تصریح میکند میگوید به خاطر اینکه وقتی به نس آیات نگاه کردن و به توضیحات و تعمیلات و دیدن که با اون که دارن انجام میدن سازگاری ندارد گفتن بردار ببردن ما خود مقاران یعنی اون مصحفه عرضه شده یک چیزی بود ببینید اینجا هر میشد که یک نکته قابل توجهی که وجود داره اینه که ما یه روایتی داریم که اون روایت میگوید که وقتی که حضرت حجت علیه سلام الله ظهور میکنند خیمه بر برمی افرا زن و در آن خیمه ها مشغول تعلیم اوران می شوند و برای مردم این سخت می شود برای اینکه که علاق غیر تعلیفی که معنوسا بهش میبینن از اینجا استفاده کردن که این یعنی این که اینی که الان دستتونشون هست بر اساس نزول نیست و اونی که در دست امام علیه السلامه بر اساس نزوله و مردم چون اون سه ذهنی ندارن اینو ترت میکنن مردم باید شد اونجا پیدا میکنن چون اون کلمه تعلیف داره خیلی بهش تکی کردن علما عجیبه کش خط میکشیدم یکیش فرد ولی چون مضمونهاشون خوبه یعنی مثل همه دیگه همون یکی که اوزاش خوب باشه اونای دیگه تحصیل میشن باون خب حالا این روایت علال جلت نتونستم پیدا کنم در داخل همین مقاله که نوشتم همینجا هست حالا این مقاله که اینجا هست این عربیه ولی فارسیش که به تفصیل بخانید در شماره سی و هشت و سی و هفته اونوه هست اینوان شمس و میراسه با با بکتو باعده بگویند که در اون روایت امام علیه السلام می‌فرمایند که وقتی که از اضافهام الواهم وقتی که حضرت محبی عجلالله تعالی فرجام الشریف قیام می‌کنند خیمه هایی را برمی افرازند و در آن خیمه ها مشغول تعلیم دادن مؤمنان به قرآن می شوند و اول اینا استیحاش می برای اینکه علا غیر ما علا غیر تالیفیه اینا در ذهنشون بوده و این رو بخواد بگن که همین ترتیب نزولیه و من اتفاقا فکر میکنم که اون روایت شاید دلیل بودنش قویتر باشه برای اینکه وقتی که یا قرینه بودنش در اینکه نه بودنش وقتی که این خیمه ها رو برمی افرازن و همان قرآنی که مصحف علی علیه السلام هست دستشه و بر اساس اون آیات رو تفسیر میکنن و بر اساس اون تفسیر آیات را میکنن و تعبیر آیات رو میکنن اینا چون قرن قرن ذهن هاشون آمیخته به تعویل ها و تفسیر های بود که با حقیقت حق الهی هم سوی ندارد. مشکلشون میشه پذیرفتن. نه ترتیب چون با ترتیب خیلی کاری ندارن اونی که عرضه می شود مختبایه اینم تقریبا استرات کردن که نفاحت این رو به بگید به نظر من اونم درست نیست برحال بنده بر این باور هستم که مصحف علی علیه السلام بر اساس نزول نبوده و اون چه که بوده مجموعی از تفسیرها تحمیلها و بیانها بوده کما انزل الله ها کما انزلها کما نزلها اینا همه اشاره به اون وحی های بیانیست نه وحی قرآنی نتیجتاً اگر یک الان اینجا در آخر مقاله نوشتم متاسفانه بعضی از علمای شیعه‌ای خود ما البته شیعه اون طرفی ها اینو نوشتن چه مصحف ها که برش باور دارم که مصحف علی باشد غیر از این مصادر اینو ادعا می‌کنن که زیادات دارد و زیادات را هم تقدیم نمیکنن برای اینکه زیاد یاد داره یا یعنی تفسیر داره یا توضیح داره. گه یعنی آیات زیاد داره. سوره زیاد داره. حالا بعضی هم که اون دو تا سوره رو گفتن که مصحف علی ابن نبی طالب اون دو تا سوره رو داشته سوره طلاق و که زاکرید که اینا دروغ محضه اگر این نظریه با این قرائل پذیرفته شود اساس بحث حل از اساس مصحف علی علیه السلام با مصحف پیامبر هیچ تفاوتی با هم ندارن یعنی قرآن در زمان خود پیغمبر جمع شده در زمان پیغمبر ترتیب یافته مصحف علی علیه السلام همون مصحف پیغمبر اولش حمده آخرش ناسه آنچه که مصحف علی علیه السلام با مصحف های دیگه تفاوت داشته این است که تمام تفسیرها و تعمیلها بیانات اعماق و جرفای آیات در مصحف علی علیه السلام بوده است این جامع بودن همگانی علد در مصحف های دیگه نبوده ولی مصحف های دیگه هم کمامش توضیح داشتن تفسیر داشتن حواشی داشتن و اون چرا هم که دستور اکید صادر کردن بر این که از بین ببرید و جردو دو و توحاید مساحب کنید یه بخششم بالی تفسیرها و توضیحها و تعمیلهاست ما علم می شود که تا اینجا اون چرا که درباره قران قرآن قرآن کریم آیات و محتوا و چگونگی شکل گیریش میخواستیم بگیم با نگاه پسینی نه نگاه پیشینی یعنی فرض بر این است که ما قرآن کریم رو قبول داریم فرض بر این است که این ما بین بیندفتین رو از آن خداوند میدونیم به وحی الهی فرض بر این است که ابدا درش تحریف قایل نیستیم یک کلمه این طرف اون طرف به این مجموعه ای که درباره حقایق است برای زندگی و در اختیار ماست، چنین موضوعات رو برایش انتخاب کردیم و قائل هستیم و میگوییم یه نکات دیگه هم هست که اونها رو دیگه ما احتمالاً نمی‌رسیم باید به یه بحثی برسونیم خودمون را در سنت مثلا بله. بله قطعا برای این اسمی مصحف داره در قرائن بسیار زیادی داره یکی از مهمترین قرائنه ها است که در زمان خود پیدم برموک هتوی کنموز هابد آ filt demonstن می آمدن کبایل بعد از فتح می آمدن به مرتب و بیشتر بعد از نبرد احزاب می آمدن و ازوارو بیگر به پادر بگردن به امال اکرم به که اعدادی از این هم می آمدن مصفل یه سریف مصفل یعنی چی؟ یعنی همینی که چیزی نوشته شده بینی ایمان زبان خودو این عبارت سید مورسید را کنید بخنم. عرض می شود که القرانه خانه این حرف سید مرتضا است ان القرانه خانه رسول الله مجموعا مؤلفا الا ما هو عليه الان یعنی حالا در دست ما هست این همون است که در زمان پیغمبرم بوده در زمان خود پیغمبر این هم جمع شده هم ترتیب یافته چی گفتید ببارک الله و این که خیلی راحته که این که سؤال نداره که اینی که در دست خلفا بوده چی بوده؟ همینی بوده که جالان هست همین. یعنی اونی که علی علیه السلام داشته غیر از اینی که در زمان پیغمبر نوشته شده بوده اولش حمد بوده آخرش ناس بوده مصحف علی علیه السلام آمیخته به تأویل ها و تفسیر ها بوده و برای این بود که نپذیرفتند اگه متن بود که خب متن در اختیار داشتن خیلی هم لاله بللیش می‌ذاشتن می‌پذیرفتن دیگه به همین جهت اصلا علت اینم که من در این جایی رو بحث کردم برای این است ما می‌خواستیم تاریخ حدیث بنویسم تاریخ قرآن که نوشتم در تاریخ حدیث میخواستم اول مکتوبات علی علیه السلام بنویسم نظام علی اسمش میراث مکتوب علویه. و اولین که نوشتم مصحف چون معتقدیم که مصحف تفسیر بوده و کتاب بوده متن قرآن را داشته از اول تا آخری که امروز هست و این متن قرآن را تفسیر و داشته و به همین جهت هم هست که علمای ما این رو به عنوان اول و تعلیف تلقی کردن دیگه من کم کم داره دیگه همین یک ذره رسده با میمونه هرمشد که ببینید این اولا ما مثلا مثل مرحوم شرفالدین این اواخر و دیگران این رو کتاب تلقی کردند برای اینکه این, این تعبیرها و تفسیرها و اینا را داشته چی؟ است حضرت مهدی شی؟ شیرو نه حالا مسجد که اون که میگن نفی بیتهی ببینید عرض میشوند که روای ها علی علیه السلام جمع کردن بله قطعا یعنی اینی که اونو تو گفتیم قبلا به الاشاره البته همه روایاتی که میگن مثلا اینکه گفتم آقای خوریام میگه تناقض داره بعضیا میگن عمر پیشنهاد کرده بعضیا میگن زید ابن ثابت پیشنهاد کرده بعضیا میگن عمر پیشنهاد کرده زید ابن ثابت مسئولش بوده حالا هر چی بوده که آمدن بعد از پیغمبر اکرم به این جهت که قرآن پراکنده پراکنده پراکنده بوده نشستن که این رو حالا جمعش کنن و اینجوریش کنن نبوده این جمع شدن که اینجوریش کنند و اونجا بعضی از جاها که شک می داشتن دو نفر را شاهد می گرفتن که هزا قرآنون املا این دوتا که شادن دیدن حضا قرآنون قرآن اگر هم یه چه که دیگه کار را داشتم که جمع ابوبکر بعضی هم نه این پیشنهاد رو زید کردون ابوبکر هم ایر اولا شروع گرفت و یعنی جده نمی گرفت و زینم جمع بود و بعد رفت به عمر گفتم عمر هم گفت خیلی کار خوبیه و بعد عرض می شود که تقاضا کردم اون مقدمات کاری که در زمان خلیفه اول شروع شده بود ولی نهایی نشده بود عمر را نهایی کرد و کرد مثلا یک مصطفی که اولش به همین سبت ناس باشه مخاشم. چیز مثل عملش هم باشه آخوش هم ناس باشه بطعا ناشک کفی و ناشبحت تعتری که من اساس دروغه اگر نظر او را بپذیرید که همه کار مال ابوبکر بوده عمر فقط پیش راه بوده نبوده هیچی زمان عمر دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده اگر اون نقل ها را کسی بپذیرد <تصفيق> که در زمان خلیفه عمر پیشنهاد کرد زید ابن ثابت شد لیدر ماجرا و ابو بکر جمع کرد شروع کردن و مقدمات کار داشت آماده می شد که نهایی بشه که او رفت ادامهش عمر انجام داد تمام کرد بله خب بله نه نه عرض می شد این مصحفی که الان انجام شد عمر درست کرد بگه این مصحف انجام شد بعد این مصحف اون نسخه اصل اصل که دست حفظه بود مردم داشتن دیگه مردم بر اساس رو قراعت میکردن میخوندن چنین میکردن چرا میکردن بعد آمد به دوره عثمان در دوره عثمان چون قراعت ها متعدد شد و میخواستن قراعت ها رو واحد کنن که من معتقد هستم که این هم یه بحانت و مای بود البته بود نه که نبود بود که زمینه تن او را درست کرد. هدف بر این اساس بوده که اصلا و ابدا از های همراه با تفسیر خلاص بشن و تفسیرها وجود نداشته باشن و تفسیرها را تجرید و ولذا بنده بر این باور هستم که در دوره خلیفه سوم فقط توحید مساحف انل قراعت ها نبود به تجرید و ها بلکه غیر از این که قراعت ها رو واحد کردن هر چه افزون برین هم در حاشیه داشته اونها رو بزمین بوردن به اون مرحله سوو تحدیدید چنه حالی داره شو میخورد ولی؟ بله؟ چی؟ ها او که یه مورده او دو مورده ببینید اینا شاهد بودن وقت بعضی از اینها مثل مثلا وز این، از اونایی بود که اگر یک اون به تنهایی هم میگفت این آیه قرآنون قبول میکردن. اگر اینجوری نبود یه تعداد را انتخاب کرده بودن که اینا وقتی که میاومدن میگفتن که ها این که شک نداریم قرآن هستانه این دو تا که میاومدن که یک حضرت پیامون بود که اینا اگر تنها بود میگفتن که وز شهادتین بود وقتی میگفتن هذا قرآنون سد می‌کردن وقتی میگفتن نصدق زمان عثمان؟ بله چون به متن دست نمیزدن متن اگر درش تردید ایجاد میشد این را بیخواستن ویلا متن مبنا متن مبنا همون متن هفصه حفظ، بود این متن مبنا بود حالا اگر کسی بیومد می اتماع میرکرد که من در مثلا مصحف فلانه دیدم یا ای این گرکی بود اصلا این گرکی نبود اون وقت اینا را می آوردن و اینا اظهار نظر نهایی رو میکردن ویلا اونجا مثل دوره ابو نبود که مثلا بر اساس ادعا بگن این سوره نبدونم کجا بوده اون یکی کجا بوده سهلیم دارم مصحف فلانی چنین بوده بز یک قسمت چاپرده بوده فلان بوده اونا اون مرحله اول مرحله جمع از پراکنده هاست مرحله عثمان بر اساس اون چکه ادعا می مرحله یکسانسازی اون چیزیست که عقوان و مصحف را داشته بوده نه کجا هم چکار شده؟ نه بیدیم اونجا اینجوری بود اونه که ما گفتیم مستند این آقایونه و منم گفتم این تاریخ ما نمیداریم واقعا اینجوری هست یا این مستند ایناست حالا ما مخواستیم این مستند معنا کنیم در اونجا گفتم ما سه تا روایت داریم یک تاریخ یعنی یک تکه تاریخ داریم سه تا روایت میشه چهار تا چهارتمی داریم که یا تعبیر انزله الله داره یا کما انزل داره یا کما انزله الله داره درسته یکی از اینها مال اون ابو رافعه که ابو رافع گفته یعنی راغایون این اینجوری استناد بکنه میگن ابو گفته که پیغمبر مثلا وقتی کرد کذا اون کذا این رو آورد این بقچه داد به پیامن گفت که این همانیست که پیامن تو را بهش رسید کذا اینشون هم تسلیم گرفتن حانا یا پس هم هم تسلیم گرفتن که تا تمام نکنن کذا اونی که من با این قسمت را باید کنر داشتم اون با اون کما اونزلش بود که گفتم این آقایون از این کما ها استناد میکنن که این بر اساس نزول بود علی علیه السلام یعنی این داد این که بقچه بود که معلوم نبود که مثلا این سورش او بود او یکی ای بر بود ای بربود او یکی اوور بود و علیه علیه السلام اینو گرفت بر اساس نزول تنظیم کرد این بحث رو در این که فیقی نمیتوان چیز بود الله اونزل یعنی بر اساس نزول خب علی اعلی اسلام بر اساس نزول این رو تنظیم کرده این نزول معناش چیه سوره سوره ای آیه ای است اینو واچاپ کنه اگر بگن این سوره سوره است که اصلا نظام قران به هم می‌ریزه و حتی همین نقل هم که الان ترتیب رو دارن از علی رسول الله رو برداشته مری میشه چون بعضی ها خیلی کم مادرک سورا مثلا همین حالا، اول می 5 یا ششتای علاق شش بود بعدش بود. بود. بود. بعد مثلا بعدیش بود نشمت بعدیش هفت ایشت سوره بازم شده برد بود بوده مثلا بعد ایتا حالت بوده یا مثلا از اون چی که میگه گروه اتا منکاب رو ندارن چی بگم متصر بود آیه آخر آخرش بدریه یعنی چیگره در برای یعنی مثلا مثلا متصر فنجوی بوده بعد اون بود تکیون تایه درده اینا خیلی موازمت دارن و نیست <تصفح> یک کمی اون مقاله رو با دقت بکنید با تعمل بکنید اون چون برای اولین بار ما یک چیزی گفتیم یکم کمی شد ولی بعد یکی از دوستان ما یه مقاله نوشد برای مبنا یکی از دوستان با یه مقاله در نقد او نوشد بعد علمه شود که یه بزرگواری یک کتاب نوشد بزرگوار دیگه باز کتاب او را نقم کرد الان دیگه شده یه نظریه پامله دعوه خوبه و ایش متعالی کنید اونایی که من نوشتم در همون شماره 37-38 علما <تصفيق> دیگه مثلا فکر اونورا که در دکتر بیشتری به استفاده کرد قر میشن تعداد بیشتر میشه به شغل باید این یه بازداوی سیه دوباره بشه این در اساس اصول بودن و مستند هست نه؟ شوره ای اسلام همینی جن و خیامت هم اندازه نمیچ. اینو ک باید باید کمی بیشتر جنب بشه در این بحث با اینجا دست